سلام و درود خدمت همه شما دوستان و همراهان همیشگی کانال هزار افزن. امروز هم افتخار این رو دارم که با یک قصه زیبایی دیگه با شما همراه باشم. بریم که بشنویم قصه خلیفه لکلک لک رو. خلیفه رشید سوم خلیفه بغداد در یک قروب زیبا راحت و بیخیال به تختش نشسته بود و استراحت میکرد. قیلیون میکشید و هرازگایی کمی قهوه از فنجونی که یکی از غلامانش بهش میداد مزه مزه میکرد و بعد از هر جرعه کیفور و سرحال دستی بریش درازش میکشید خلاصه همه اون رو سرحال و سرزوق میدیدند در واقع این بهترین موقع بود که دیگران بهش نزدیک بشند و صفرگ دلشون رو براش باز کنن چون با اطمینان میشه گفت که در اون موقع روز اون هم مهربون بود هم خوش اخلاق. به همین دلیل منصور وزیر بزرگ اون همیشه این زمان رو برای دیدار روزانه و ارائه گزارش مناسب میدونست و به حضورش میرفت وزیر بزرگ در این بعد از طبق معمول پیش خلیفه رفت اما برخلاف همیشه چهرش نگران بود خلیفه لحظه نی قلیون رو از روی لباش برداشت و پرسید وزیر بزرگ چرا اینقدر پریشونی وزیر بزرگ دستاش رو به سینه گذاشت و در برابر سرور خودش تعظیم کرد و جواب داد سرورم اینکه چهرم نگرانم نشون میده یا نه نمیدونم اما کمی پایین تر در محبتهٔ قصر فروشندگی دورهگردیه که اشیای زیبایی داره و من از اینکه برای خرید اون اشیا پول کافی ندارم ناراحتم خلیفه که دلش میخواست مدتی از وقتش رو با حضور وزیر بزرگ بگذرونه به غلام سیاهش دستور داد تا فوراً بره و دورگرد رو پیش اون بیاره. غلام در حالی که دورگرد به دنبالش میومد خیلی زود برگشت. دورگرد مردی مستبد، کوچک و سیاه چورده با لباس های بسیار بسیار و پاره بود و جعبهی با خودش هم می که پر از اشیایی چون رشته های مربارید، تپانچه، حلقه، جام و شانه بود. خلیفه و وزیر همه چیز رو به دقت وارسی کردند خلیفه برای خودش و منصور تپانچه های زیبا و برای همسر وزیر شانه جواهر جواهرنشان انتخاب کرد درست موقعی که دورگرد جعبه رو میبست چشم خلیفه به کشویی کوچیک افتاده و پرسید آیا چیز خاصی برای فروش در اون هست فروشنده کشور رو باز کرد و جعبهای به اونها نشون داد که گرد سیاهی در اون وجود داشت یک تومار هم به خطی عجیب در اون کشو بود که خلیفه و منصور نتونستن اون رو بخونن. فروشنده گفت این دوتا رو از تاجری که اونها رو در یکی از خیابونهای مکه تهیه کرده بود خریدم. نمیدونستم چی هستن و الان چون می بینم برام ای ندارن خوشحال میشم که به عنوان هدیهای ناقابل از من قبولش کنید. خلیفه که دوستاش دستخطهای قدیمی رو توی کتاب خونش جمع کنه، حتی با وجود اینکه نمیتونست اون رو بخونه جعبه و تومار رو با هم خرید بعد چون خیلی مشتاق بود که از مطالب تومار سر در بیاره، از وزیرش پرسید آیا کسی رو میشناسه که بتونه اون دستخط رو بخونه و رمز رمزگشایی کنه وزیر جواب داد سرورم با کمال میل به اطلاع میرسونم که نزدیک مسجد بزرگ مردی به نام سلیم دانشمند زندگی میکنه که با هر زبانی در این دنیا آشناست دنبالش بفرستید اون همون کسیه که میتونه این نوشته های عجیب رو بخونه و تفسیر کنه. فوراً به دنبال سلیم دانشمند فرستادن. وقتی اون رو به حضور خلیفه آوردن بهش گفت سلیم به من گفتن که تو فردی دانشمند هستی. خوب به این نگاه کن و ببین آیا میتونی اون رو بخونی؟ اگر بتونی به تو خلعت یا ردای افتخار میدم. اما اگر نتونستی بخونی دوازده سیلی به صورتت، و بیست و پنج شلق به کف پات میزنم چون معلوم میشه که تو رو به غلط سلیم دانشمند صدا میزنن سلیم به خاک افتاد و گفت بگذار هرچه اراده سرورم هست همون بشه بعد به نوشته ی تومار نگاه کرد و فریاد کشید سرورم اگر این نوشته به خط لاتین نباشه سرم رو قطع کنید خلیفه گفت خب اگه لاتین اون رو برامون معنی کن سلیم شروع کرد به ترجمه متن تویی که این نوشته رو پیدا می کنی. به خدای مهربان پناه ببر هر کسی که گرد داخل جربه رو به بینی بکشه و در همون لحظه کلمه متابور رو به زبان بیاره میتونه تونه خودش رو به هر شکلی که میخواد در بیاره و زبان تمام حیوانات رو بفهمه هر وقت بخواد به شکل انسانی خودش برگرده فقط باید سه بار به طرف شرق خم بشه و همون کلمه رو تکرار کنه البته باید بدونه وقتی به شکل جانور یا پرنده‌ای در اومد هرگز نباید بخنده و در ضمن اگر کلمه جادو رو فراموش کنه همیشه به همون شکل باقی میمونه بعد از اینکه سلیم دانشمند نوشته رو ترجمه کرد خلیفه خیلی خوشحال شد اون مرد دانشمند رو قسم داد که در این مورد با کسی حرفی نزنه و همونطور که قول داده بود بهش خلعت عطا کرد و مرخصش کرد. بعد به وزیرش گفت منصور به این میگن یک معامله حسابی. دوست دارم یک لحظه هم که شده به یک حیوانی تبدیل بشم. میخوام فردا صبح خیلی زود بیای پیش من. با هم به اطراف بغداد میریم و مقداری از گرد سیاه ببینی میکشیم. بعد به صداهایی گوش میکنیم که در هوا و زمین و آب به گوش میرسه. صبح بعد خلیفه رشید تازه لباس پوشیده بود و صبحانه خورده بود که وزیر بزرگ طبق دستور برای همراهیش وارد شد خلیفه انفیدان رو به کمر بست و از خدمتکاران و زیردستانش خواست که توی قصر بمونند بعد به همراه وزیر بزرگ تنها بره افتاد اول در باقای قصر گشتی زدند اما هرچی گشتن تا موجوداتی پیدا کنند و قدرت جادویی رو به کار بندازند بیفایده بود بالاخره وزیر پیشنهاد کرد که جلوتر برند تا به آبگیری برسند که بیرون شهر بود. اونجا اغلب پر از لکلک لک بود. لکلک لک ظاهری زیبا و با باشکوه داره و نظر هر بیننده‌ای رو به خودش جلب میکنه. خلیفه رضایت داد و یک راست به سمت آبگیر رفتن. همون که به اونجا رسیدند، لکلکی رو دیدند که راست و استوار خمراس میشد و سعی میکرد قورباغه ای رو شکار کنه. گاهگاهی چیزی زمزمه میکرد. همون موقع لکلک لک دیگری رو در هوا دیدند که پرواز کنان به سمت اونها پیش میومد. وزیر بزرگ گفت سرور والا مقام ریشم رو گروه میگذارم که این دوتا پرندگی لنگ دراز با هم گفتگوی خوبی خواهند داشت. چطوره که ما هم خودمون رو به دوتا تا لک, لک تبدیل کنیم؟ خلیفه جواب داد بسیار خوب اول باید تمرین کنیم که چطور دوباره به شکل اول خودمون برگردیم. بله. باید سه بار به طرف شرق خم بشیم و بگیم متابور من خلیفه و تو وزیر بزرگ خواهی بود فقط به خاطر خدا هم که شده نخند وگره همه چیز به باد میره وقتی خلیفه صحبت میکرد لکلک دوم دور سر لکلک اول چرخید و آهسته به طرف زمین پرواز کرد خلیفه فوره انفیدان را از کمر برداشت مقداری از گرد رو در بینی کشید و مقداری هم به منصور داد هر دو با بلند گفتند، متابور. بلا فاصله پاهاشون نازک و قرمز شد دمپایی زیبای زردشون مثل پاهای زشت لکلک لک شد دستاشون به بال تبدیل شد و گردنشون در وسط شونها دراز و کشیده ریششون ناپدید و بدنشون پر از پر شد خلیفه که مدتی مات و مبود سر جاش خوشکش زده بود گفت جناب وزیر چه منقاری دراز قشنگی داری؟ به روح پیامبر بزرگ قسم میخورم که تا به حال چون این چیزی ندیده بودم وزیر بزرگ در حالی که گردن درازش رو به نشانه احترام خم می کرد جواب داد با فروتنی تمام سپاسم را نثار شما می کنم پس به خودم جرئت میدم و میگم که اعلی حضرت در هیئت لکلک خیلی زیباتر تا خلیفه هر چه باد آباد اگر موافقید به هم نوعان خودمون نزدیک بشیم و ببینیم آیا واقعا زبون اونها رو میفهمیم؟ در همین موقع لکلک دوم به زمین فرود اومد. اول با پنجهاش منقارش رو خاروند، بعد پرهاش رو صاف و مرتب کرد و به سمت لکلک لک اول بره افتاد. دو لکلک لک ما هم لحظه ای رو در نزدیک شدن به اونا از دست ندادند و با کمال تعجب این گفتگو رو شنیدند. صبح بخیر لنگ دراز، چقدر زود بیرون اومدی؟ بله همینطور من قارچمچمه عزیز دنبال کمی غذا هستم میتونم تو رو به کمی گوشت مارمولک یا ران قورباغه دعوت کنم هزار بار ممنونم اما امروز صبح واقعا میلی به غذا ندارم برای کاری دیگه به اینجا اومدم امروز قراره در برابر مهمانان پدرم پای کوبی کنم و برای تمرین به این چمنزار اومدم بعد لکلک لک جوان با حرکاتی شگفت به چرخش درآمد خلیفه و منصور مدتی شگفت زده فقط نگاش کردند اما وقتی لکلک لک با حالتی دلربا به روی یک پا ایستاد و بالهاش رو با یه تمام بالا و پایین برد نتونستن بیشتر از این تحمل کنن صدایی ممتد از منقارهاشون خارج شد این وزن کمی قبل از اون بود که بتونن به خودشون بیان همین که خلیفه به خودش اومد گفت این شادی صحنه ای بود که تا به حال دیدم حیف که اون موجود نادان به خاطر خنده ما از ترس فرار کرد و گنه ترانه زیبایی هم برامون میخوند یک دفعه وزیر به یاد آورد که به اونها هشدار جدی داده بودند که نخندن. فورا ترس خودش رو با خلیفه درمیون گذاشت اون فریاد زد قسم به مکه و مدینه که این خیلی لطیفه غم نکنه بقیه عمرم رو لکلک لک بمونم اون کلمه احمقانه رو به یاد بیار انگار از ذهنم پاک شده وزیر گفت ما باید سه بار به سمت مشرق خم بشیم و بگیم مو مو مو اونها رو به مشرق ایستادند و چنان خم شدند که منقارهاشون در زمین فرو میرفت چقدر وحشتناک بود کلمه جادوی کاملا از یادشون رفته بود خلیفه مرتب تعظیم میکرد و وزیرش با لحنی سوزناک داد میزد مو مو اما کلمه رو به یاد نیوردند خلیفه و منصور بخت برگشته لکلک لک باقی موندند. دو پرندگی تلسم شده با اندوه خیلی زیاد در چمنزار سرگردون شدن. نمی دونستن با این بدبختی که گرفتاره شدن چیکار کنند. کنن. خودشون رو از ظاهر تازه که پیدا کردن رها کنن. برگشتن به شر و گفتن اینکه کی هستند هم فایده ای نداشت. حرف یک لکلک لک رو که میگه خلیفه است. کی باور میکنه حتی اگه باورم میکردن آیا ساکنان بغداد راضی میشدند که یک لکلک به اونها حکومت کنه اونها چندین روز بی هدف این طرف و اون طرف رفتند و با میوه هایی که خوردنشون با اون منقارهای دراز واقعا مشکل بود شکمشون رو سیر میکردند اصلا تو فکر خوردن قورباغه یا مارمولک نبودن تنها دلخوشیشون لذت پرواز بود برای همین اغلب به بالای بام های بغداد پرواز میکردند تا ببینند در شهر چی میگذره. در خلال چند روز اول، اونها متوجه نشونه های از دردسر و آشوب تو خیابونهای شهر شدند. روز چهارم، موقعی که روی پشت بام قصر نشسته بودند، چشمشون به گروه باشکوهی افتاد که از خیابون تبل تابلوها و شیپورها مینواختند. اونها مردی رو با ردایی قرمز و تلادوزی شده سوار به اسبی آراسته به زرهی با شکوه به همراهی بردگانی خوشپوش دیدند نیمی هم از مردم بغداد در پی اونها روان بودند و فریاد میکشیدند درود به میرزا فرمانروای بغداد. دو لکلکه نشسته به پشت بام قصر نگاهی به همدیگه انداختند خلیفه رشید گفت وزیر بزرگ حالا میفهمی چرا من تلسم شدم این میرزا پسر دشمن به هلاکت رسیده من جادوگر توانمند کاشنوره که در لحظه شیطانی قسم خورد از من انتقام بگیره. اما من هنوز امیدم را از دست ندادم. همراه هم بیا دوست وفا دارم. باید به آرامگاه پیامبر اکرم بریم. شاید در اون مکان مقدس تلسم ما بشکنه. اونها از پشتبام قسم بلند شدند بالهاشون رو باز کردند و به سمت مدینه پرواز کردند. اما پرواز به اونجا کار سادهی نبود. چون اون دو تا لکلک لک تا اون زمان خیلی تمرین پرواز نکرده بودن. بعد از یکی دو ساعت وزیر نفذ گفت سرورم شما واقعا تونتر از من پرواز میکنید. بیشتر از این نمیتونم پرواز کنم. غروبم نزدیکه و باید جایی رو برای گذراندن شب پیدا کنیم. رشید با محبت تمام به وزیرش گوش کرد و با دیدن ویرانه ای در دره پایین که به نظر پایگاه مناسبی می اومد به طرف اونجا پرواز کردند. خرابه که قرار بود شب رو در اونجا صبح کنند قبلا قصر بود. هنوزم تعدادی ستون زیبا در بین خرابه ها دیده میشد و چندین اتاق هم در وضعیتی مناسب بر جای مونده بود که نشون از شوکت و عظمت دوران قبل داشتند. رشید و همراهش در راروها میگشتند و دنبال جایی خشکی بودند که یک دفعه منصور سر جاش ایستاد اون زمزمه کنان گفت سرور و بزرگ من اگه این سخن وزیرت رو بیمعنی و مسخره ندونی به خصوص حالا که لکلکم باید بگم که از ارواه میترسم کاملا عصبیام چون حس میکنم کسی یا چیزی به من نزدیکه و آه و فقانش رو به وضو میشنوم خلیفه آروم ایستاد و به وضوف صدای گریه ضعیفی رو در اطراف خودش شنید به نظر می رسید گریه یک انسانه تا ناله یک حیوان بالاخره سرشار از حس کنجکاوی آماده شد تا به طرف محلی بره که صدای نالوزاری از اونجا میومد که وزیر با منقارش بال اون رو گرفت و التماس کرد که خودش رو به خطر نندازه خلیفه که در کالبد لکلکی خودش قلب دلیری داشت بالش رو از منقار وزیر بیرون کشید و با این کار چند تا پر خودش رو از دست داد و با عجله در راهروی تاریک به پیش رفت. در نیمه بازی را دید که از بین اون صدای آه و ناله و زاری به وضوح به گوش می رسید. در رو با منقار خودش باز کرد. از چیزی که در برابر چشماش می دید متعجب در آستانه در ایستاد. به کف اتاق ویرانه که با نور کمی که از پنجره میتابید روشن شده بود، جغدی نالان نشسته بود. قطره های عشق از چشمان بزرگ گردش جاری بود. جغد با صدایی خشن که از منقار سرکجش بیرون میومد، از روزگار گله و شکایت میکرد. چشم جغد به خلیفه و وزیر که در همین اسنا خودش رو به خلیفه رسونده بود افتاد نالش به فریادهای شاد تبدیل شد. جغد به آرامی اشکهاش رو با بالهای قهوه خالخالی پاک کرد. و رو به دوتا تازه وارد که ماتشون برده بود به زبان عربی گفت خوش آمدی جنابان لکلک لک شما نشونه خوبی برای رهایی من هستین چون برام پیش بینی شده که با اومدن لکلک تلسم از من دور میشه و بخت نیکو به سراغم میاد همین که بحت و تعجب از سر خلیفه پرید خودش رو جمع و جور کرد گردن درازش رو به پایین آورد و گفت ای جغد نالان از حرفات اینطور میفهمم که مثل ما بخت از تو روی برگردونده. افسوس، امیدی به رهایی به دست ما نداشته باش. اگر به قصه ما گوش بدی، میفهمی که کاری از دست ما ساخته نیست. جغد نالان تقاضا کرد خلیفه قصه شو برای اون تعریف کنه و اون چیزی رو که ما میدونیم براش تعریف کرد. وقتی خلیفه حرفاش تمام شد، جغد تشکر کرد و گفت حالا به داستان من گوشکن تا بفهمی که بدبختی من از شما کمتر نیست. پدرم پادشاه سراسر هنده. من تنها دخترش هستم و اسمم لوساست. جادوگر کاشنور که شما را تلسم کرده باعث بدبختی من هم شده. اون یک روز پیش پدرم اومد و منو برای پسرش میرزا خاصکاری کرد. پدرم که تا حدودی با عجله تصمیم میگرفت دستور داد که اون رو از پله پایین بندازند. جادوگر نابکار زیاد منتظر نموند و کمی بعد به شکلی دیگه به من نزدیک شد. یک روز موقعی که در باغ بودم و تقاضای خوردنی و نوشیدنی کردم اون که خودش رو به شکل قلام در بود برام نوشابه اوورد که با نوشیدن یک جاره از اون بلافاصله به این شکل هراسانگیز در اومدم. از ترس بیهوش شدم. اون منو به اینجا اوورد و با صدای وحشتناکش سرم داد زد. این هم اقامتگاهت. اینجا تنها و در ترس زندگی میکنی و با جانوران همنشین میشی تا عمرت به سر بیاد فقط در صورتی آزاد میشی که فردی به خواست خودش از تو تقاضای ازدواج کنه من با این کار انتقام خودم را از تو و پدر مقرورت گرفتم ماها گذشت من غمگین و تنها مثل یک راهب در بین این دیوارها زندگی کردم از جهان بریدم و در وحشت از حیوانات عمرم به سر اومد دیگه زیبایی طبیعت رو نمی‌بینم چون روز کور هستم و فقط شب‌هایی که ماه رنگ پریده به این مکان میتابه پرده از جلوی چشمام دور میشو و میتونم ببینم جغد مکسی کرد و با یاداوری رنجهاش یک بار دیگه اش به چشماش اومد و با بالهاش اونا رو پاک کرد خلیفه با شنیدن قصه شاه عمیقا به فکر فرو رفت اون گفت اگه اشتباه نکنم بین بدبختی های ما رابطه رازآلود وجود داره پیدا کردن کلید این معما خودش مسئلهیه. جغ جواب داد، سرورم، من مطمئنم چون در دوران اول جوانیم زنی دانا پیشبینی کرد که لک باعث خوشبختیم میشه. فکر میکنم بتونیم خودمون رو نجات بدیم. خلیفه خیلی تعجب کرد و پرسید منظورش چیه؟ شاهدخت گفت، جادوگری که ما رو به این وضع رقتنگیزده در ورده ماهی یک بار سری به این ویرانه ها میزنه. در فاصله نه چندان دور از این اتاق، تالار بزرگی قرار داره که اون با همپالکیهای خودش در اونجا جشن می می‌گیرن. بیشتر اوقات اونها رو تماشا می‌کنم. اونها با همدیگه درباره کارهای شیطانیشون صحبت می‌کنن. احتمال داره کلمه جادوگری رو که از یادتون رفته در حرفاشون به کار ببرن. خلیفه با شگفتی گفت: شاه دختر عزیز، بگو کی میان و تالار کجاست؟ جخت یک لازم مکس کرد و بعد گفت. این حرفم رو به حساب نامهربانیم نگذارید اما فقط به یک شرط تقاضاتون رو برآورده میکنم رشید با فریاد گفت بگو به تو دستور میدم هرچی بخوای با خوشحالی برآورده میکنم جغد جواب داد بسیار خوب میدونی که دوست دارم آزاد بشم و این فقط در صورتی امکان پذیره که یکی از شما به من پیشنهاد ازدواج بده لک لک ها ظاهرا از این پیشنهاد کمی تعجب کردند و یکی خوردند خلیفه به وزیر اشاره کرد که یه گوشهای برن تا با هم مشورت کنن. وقتی بیرون رفتن خلیفه گفت وزیر بزرگ در وضعیت بدی گرفتار شدیم البته تو میتونی باهاش ازدواج کنی وزیر گفت جدان در این صورت وقتی به خونه برگردم همسرم چشمام را از کاسه میاره. تازه من پیرم و شما اعلی حضرت هنوز جوونید و همسر ندارید شاهدخت زیبا و جوان جفت مناسبی برای شما میشه خلیفه که بالهاش رو به پایین جمع شده بود آهی کشید و گفت از کجا میدونی جوان و زیباس نظرم مثل ای مرغ پرکنده است یه مدت با هم بحث کردند و بالاخره وقتی خلیفه دید که وزیرش ترجیح میده تا آخر عمرش لکلک لک بمونه تا اینکه با یک جغد ازدواج کنه تصمیم گرفت که خودش به این وضع خاتمه بده و شرط رو بپذیره جغد خیلی خوشحال شد معتقد بود که اونها میتونن در زمان بهتری به تالار برن چون به احتمال زیاد جادوگران درست در همون شب همدیگر رو خواهند دید. بعد اونها رو به اتاق برد. اونها از راهروی تاریک درازی گذشتند تا بالاخره پرتوه روشنایی رو که از شکاف دیوار نیمه ویران به داخل میومد در برابر خودشون دیدن. وقتی که به اونجا رسیدن جغ توصیه کرد که کاملا ساکت باشند. از شکافی نزدیک به راحتی میتونستان تمام تالار رو زیر نظر بگیرن. تالار ستون‌های کندکاری زیبایی داشت. یه تعداد چراغ رنگارنگ اونجا رو مثل روز روشن کرده بود. در وسط تالار میز گردی قرار داشت که روش انواع غذاها چیده شده بود. نزدیک میز نیمکت راحتی قرار داشت که هشت مرد روش نشسته بودند. اون دو تا لکلک لک در بین اون مردان نابکار دورگردی رو دیدند که گرد جادویی رو به اونها فروخته بود مردی که کنار دورگرد بود ازش خواست تا درباره کارهایی که اخیراً انجام داده صحبت کنه و اون هم قصه خلیفه و وزیرش رو تعریف کرد جادوگر پیر از اون پرسید حالا چه کلمه‌ای بهشون یاد دادی دورگرد گفت یک کلمه بسیار مشکل لاتین موتابور همین که لک لک ها این کلمه رو شنیدند چیزی نمونده بود از خوشحالی قش کنند. اونها چنان با عجله به طرف در قصر ویران دویدن که جغد به زحمت تونست خودش رو به اونا برسونه. وقتی که به دروازه رسیدند، خلیفه رو به جغد کرد و با حالتی احساساتی گفت تو آزاد کننده منو دوستم هستی. من به نشانه قدردانی همیشگی با تو ازدواج میکنم. بعد به طرف مشرق ایستادند. گردنهای درازشون رو سه بار به سمت خورشید که تازه داشت از پشت گوها بالا میومد خم کردند و کلمه موتابور رو به زبان آوردند در یک چشم به هم زدن تغییر شکل دادند ارباب و وزیرش زغ زده از برگشت به زندگی خودشون خندیدند و گریه شوق سر دادند و همدیگر رو در آغوش گرفتند کسی نمیتونست شگفت زدگیشون رو درست موقعی که سر برگردوندند و در کنار خودشون بانوی زیبایی رو با لباس های فاخر دیدند توصیف کنند. بانو با لبخندی شیرین دستش رو به سمت خلیفه دراز کرد و پرسید دیگه جغد جغد جغد رو نمی اون خود بانو بود. خلیفه چنان محو و شیفته ادب و زیبایی اون شده بود که اعتراف کرد بخت باش یار بوده که به لکلک تبدیل شده وگرنه هرگز جغد رو نمی‌دید. اون سه نفر فورا به سمت بغداد را افتادند خوشبختان خلیفه نه فقط جعبهٔ گرد جادویی بلکه کیسه ای رو هم که به کمرش بسته بود پیدا کرد به این ترتیب تونستند در نزدیکترین روستا چیزایی را رو که برای سفر احتیاج داشتند تهیه کنند بالاخره با ورود خلیفه به بغداد شور و حیجان زیادی بپا شد چون همه فکر میکردند که اون مرده مردم با دیدن دوباره ی حاکم محبوبشون از شادی سر از پا نهمیشناختند البته خشم اونها نسبت به میرزا که قاصب حکومت بود دسته کمی از شادیشون نداشت اونها با خشم و اتاب بسیار به سمت قصر هجوم بردند و جادوگر پیر و پسرش رو به زندان انداختند خلیفه دستور داد تا جادوگر رو به همون اتاقی ببرند که شاهدخت به شکل جغ در اونجا زندگی میکرد و دار آویزون کنند اما چون پسرش چیزی از کارهای پدرش نمیدونست خلیفه دو راه پیش اون گذاشت یا مرگ رو بپذیره یا اینکه مقداری از گرد جادویی در بینیش بکشه. اون راه دوم رو انتخاب کرد و وزیر بزرگ جعبه رو به دستش داد. یک ذره از اون گرد و بعدش گفتن کلمه جادویی کافی بود که اون به لکلک لک تبدیل بشه. به دستور خلیفه لکلک لک رو در قفصی آهنی گذاشتند و قفس رو هم در باغ‌های قصر قرار دادند. خلیفه رشید سالهای سال با شادمانی و خوشحالی در کنار همسرش زندگی کرد. شادترین دوری زندگیش موقعی بود که وزیر بزرگ در یک بعد ازظهر به دیدارش رفت. خلیفه که واقعا سرحال و شاد بود، سر به سر وزیر گذاشت و بهاش مزاح کرد و عدای زمانی رو که لکلک لک بود در آورد. اون روی پنجه پا استاد، پاهاش رو کش داد و مثل لکلک لک بالا و پایین پرید و از اتاقی به اتاق دیگه رفت. اون صدای لکلک لک در می آورد و نشون میداد که چطور وزیر بیهوده تلاش می کرد بگه مو مو همسر خلیف و بچه هاش از این اداها همیشه سرگرم می شدن وقتی خلیفه سرش رو پایین می آورد خم می شد و می گفت مو مو وزیر خنده کنان با شوخی می گفت حرفایی رو که خلیفه اون شب در خرابه و بیرون دروازه درباره اون جغد جیغ, جیغ زده برای همسرش تعریف میکنه